درباره کسی که جوز و فاصیغات نماز جنازه می توان خاند نماز جنازه بی خانند اما نیکان و صالح هم در جنازه شرکت نکنن علماء شرکت نکنن پر اندر مثل خود اشتنا جنازه شرکت نکنن این از گیار مورد اکرام قرار ندهی حالا متاسفان نماز جنازه هم هم دی تشریفاتی هم اگر انسان نیک انسان صالح افاد بکنه هیچ کس نمی ره انسان مشهور افاد بکنه ولو ایک بار ہم نماز باید انجاد تعین نماز باید باشید نیک صالح از انسان نیکی وقات کرده برید شرکت بکنید علماء بزرگ در نماز نازی افراد فاسد دو شرکت نکنن چون این قابل اکرام و ازاز نیستن حالا حدیث داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن به حضرت عبوزر غفاری قومت عبوزر تنها زندگی میکنی و تنها میمیری و تنها دفر میشید اما گروه اصحاب اکرام تو ن از مدینه می آیند. راه داشته شهر روستای ربزه رابطه روستای کوچکی بود. همونجا از زندگی می کرد با خانویش. تو شهر زندگی باش مشکل شده بود. اونجا وقتی کردم مشکل شد. و حالا وقت وفات به با گفت که حالا من اینجا همون پیش بوی مزی. گفت اصلا من داره بیم می با وقتی که موردم از اینجا قافلی میاد می از مدینه طیبه بونها بود واجد نازدی منو بدهند. چون نبیکریم می دونن من گفتن. تمامی کو مد منتظر شدند صحابه کرام آمدند گفتند که اینجا که توفاگر کیگ و بودو و ابوزر میفاری انسان‌های بزرگ نی و افتخارات و مذانادیشو خونند در زبان حضرت گوش در زمان حضرت موسا یه شخصی بسیار بد الا داستانی است داستانی است انسان بسیار بدی بود انقد جنایت کرده بود که مردم تصمیم گرفتن اگر چنین شخصی فوت بکنه ما نماز جنازه اون نمیذین یعنی انقد این بد این کرده برای ما انقد مردم از دست آسی شده بودن گفتن اگر این مرد حالا نماز جنازه نمیدیم به زهرینجا بیفته به پولس بگیره تا برای دیگران عبرتی باشه خودش هم شد مردم گفتن اگر مردم کسی ما رو حالا دفن نمیکنه در لحظات آخرش دست به دعاشون گو خدایا من بدم و اعتراف می کنم که بدم و بد کردم خدایا اگر منو تو ببخشی از رحمتا تو کم میشه منو نبخش و اگر منو ببخشی چیزی کم نمیشه خدایا من توبه کردم منو ببخش حالا شایر به عربی شیر شو آورده یا رب این عزم زنوبی کفرتن فلقد علمت بان افوک آزبو فا اینکانا لا یرجوک الا محسنو فا من یجیر و یستجیر بجرمو فا من و یستجیر بجرمو اینی مدد یدی علی که تظررم فا این غداد یدی فا من با خدایا لگر علم تو می خدا من می دونم که گناه های من خیلی زیادم اما می دونم که آف و بخشش شما از گناه ها خیلی بیشترند شما خیلی بیشتر آف شما بزورتر است می خدایا دستهارو با درو شما دراز کردیم خدایا اگر تو فقط نیکان را مورد نوازش قرار بدهی تتمه بدم پیشو کی بیریم ما کجا بیریم دار میگی من من آمدیم دستهارو دراز کردیم اگر تو رد کردی هیچ کسی دلوشما رحم کننده نیست بر من بر من رحم فرما مورد وقتی که خداوند متعال در مصطفیٰ دستود دا برو در فرنجہ ایک انسان صالح و نیک کی ازما قوت کرده دے اور دفن کو حس مصحابے خوشی رہ کہ انسان صالح وفات کرده دے بے روزتاک رسید جبرائیل آدرس آدرستہ برو فرنجہ گفت مردوں مصطفیٰ چبا انسان خوب و نیک وفات کر دے گفت کی وہ فلانی اوے او این آمدی تو تو پیغمبری بات تسلیم گرفتی کہ اینو دفن نہ کریں انقدر بد بوده تو میگی نیک بوده تحجیل که خدای این داستان چی اینجا دوباره مناجاتی که خداوند متعال بار الله مردم اینجور میگن شما میگی برو حالا من مندم اینجا خداوند متعال پربود این توبه کرد و توبه از این که که ما او رو بخشیدیم پس نیکانه شرکت بکنی.